صفحه ی یا گفت لحظه‌ای بعد من این خانه را ترک خواهم کرد تا تو بهتر بتوانی به با معشوق خود به ایش و نوش پردازی داری آنگاه از اتاق خارج شد و در را محکم پشت سر خود بست. ابلونسکی آهی کشید و زیر لب گفت با وجود آنکه ماچیو گفت کارهای دشوار خود به خود حل می شود پس چگونه قضیه حل شدنی نیست؟ ابلونسکی لحظه بی حرکت ایستاد ولی بعد ماتیو را صدا زد و گفت تو و ماترینیا با هم اتاق کوچک پذیرایی را برای سکونت خواهرم حاضر نمایید ماتیو گفت بسیار خوب اما ابلونسکی اسای خود را برداشته آمادهی بیرون رفتن شده ماتیو از او پرسید آقا آیا برای صرف نهار خواهید آمد نمیدانم نمیدانم تا چه پیش آید دریا صدای چرخ های کالسکی که شوهرش را میبرد شنید و به اتاق خود برگشت. آنگاه صحبت های شوهر خود را به یاد آورد و با وحشت از اینکه مبادا دیگر شوهر خود را نبیند به کارهای خانه اشتغال یافت. فصل 5 ابلانسکی با اینکه جوان بود، پست مهمی را به کمک الکسیس کارنین شوهرخواهر خود آنا کارنینا در موسکو به دست آورده بود. الکسیس یکی از وزرای مهم دولت بود. تقریبا نیمی از بزرگان و متنفذین موسکو و پترزبورگ از خیشان و دوستان ابلونسکی بودند. وی از ای بود که زمان امور کشور را در دست داشتند. خوشرویی و برگلگوی ابلونسکی سبب شده بود که همه آشنایان او را دوست میداشتند و چهره باز، چشمان درخشنده و شکل ظاهری او هر کسی را جلب میکرد. او در خلال سه سالی که پست مهم خود را اشغال کرده بود توانسته بود رضایت و احترام اعضای زیر دست خود را به دست آورد. احساس به نقص و نادانی خود باعث شده بود که ابلونسکی با دستانش خوشرفتاری و سهلنگاری کند او به اداره خود رفت پیشخدمتها و کارمندان قامت خود را در برابر او خم کردند او پشت میز خود نشند کارمندان پرونده ها و نامه ها را برای امضا به نزد او آوردند او چون به خوبی می که خوشرویی و حسن سلوک با کارمندان تا چند روز مفید و موثر است از این رو مدتی با کارمندان خود مشغول صحبت و شوخی گردید آنگاه شروع به انجام کارهای اداری نمود و از کارمندی خواست که بعض اوراق را برای او بخواند کارمند اطاعت نمود و ابلونسکی هم چنین وانمود کرد که گوش میدهد و پیش خود گفت آه این کارمندان نمیدانند که ریسان ها تا نیم ساعت پیش چی مانند مجرمی در برابر همسر خود ایستاده و ترس و وحشت داشت؟ پس از آن تبسمی بر لبانش نمایان گردید. تقریبا ساعت یک بود که جوان بلند بالای ای وارد اتاق ابلونسکی شد. ابلونسکی از جای جهید و فریاد برابرد. آه لیفین این تویی؟ آنگاه با گرمه تمام به او دست داد. سپس او را بوسید و پرسید. کیه به موسکو آمدی؟ جواب داد: همین حالا من مخصوصا برای ملاقات تو به موسکو آمدم و صحبتی دارم که باید با تو بکنم املاوسی زود با اشخاص دوست می شد کافی بود با کسی یک گیلاس آبجو و شامپان بنوشد و سپس با آن شخص دوست بشود ولی دوستی او با لیفین خیلی محکم بود زیرا این دوستی از زمان تحصیل در مدرسه پیدا شده بود پس از آن که از هم جدا شدند، باز هم رفاقت خود را فراموش نکردند. ابلونسکی آن پست مهم را احراز کرد و لیفین هم که از موسکو و سرسدای آن بدش می به شهرستان ها رفت. ابلونسکی گفت لیفین از دیدار تو بسیار خوشبختم. من از خیلی پیش انتظار دیدارت را داشتم و مایلم که نهار را با هم سرس کنیم. لیفین گفت نه من نمیتوانم غذا را با تو صرف کنم وانگهی صحبت من با تو چندان طول نخواهد کشید ابلونسکی گفت پس خوب است که مقصود خود را مختصر بیان کنی بقیه صحبت برای سرمیز شام بماند لیفین گفت آنچه را که میخواهم بگویم این است که ولی جوان نتوانست کلام خود را به پایان برساند چهرهش از شرمندگی سرخ شد و پرسید از شاهزاده شرباکسکی و خانوادهش چه خبر داری؟ ابلونسکی تبسمی نمود. زیرا میدانست که لیفین شیفته کاترین دختر شاهزاده شیرباتسکی، و خوه دارییا داریا می باشد. چون این پاسخ داد. حالشان خوب است. اگر می خواهی آنها را ببینی باید به میدان یخبازی واقع در باغ بحش بردی. کاترین هر روز بین ساعت چهار و پنج به آنجا می رود. مای لیفین باز شد، آنگاه گونه هایش سرخ شده و گفت، آیا منتظر تو بشدن؟ مانعی ندارد، پس از آن هم شام را با هم سرخ میکنیم و بعد دوباره آنچه که مایلیم در صحبت خواهیم کرد. فصل ششم لیفین رفت، در حالی که خود را سرزنش میکرد که چرا خجالت کشیده و در همان دم، به اوبلونسکی بزن گفت که وی برای این به موسکو آمده است تا از کاترین خواستگاری کند. خانواده های و لیفین از خانواده های قدیمی و محترم موسکو بودند. از قدیم بین آن دو خانواده دوستی برقرار بوده. و دوستی آن دو خانواده بر اثر رفاقت لیفین و نیکولا شرباکسکی برادر داریا و کاترین که با هم در دانشگاه موسکو درس می مستحکم گردید. در ایام گذشته چیزی نمانده بود که لیفین در عشق داریا گرفتار شود ولی ابلانسکی بر او دستی کرد و از داریا خاسکاری نمود در آن موقع چون لیفین حس کرده بود که کاترین را بیشتر از خواهرش دوست میدارد از این رو با خانواده مذبور رفت آمد نمود تا اینکه اخیرا یقین حاصل کرد که در عشق کاترین سخت گرفتار شده است و کاترین تنها دختری است که میتواند زندگانی زناشویی سعادتمندی برای او تهیه کند چندان عجیب نبود که جوان سروتمند و اصیلی مانند لیفین از کاترین شرباتسکی خواستگاری کند لیفین که به درد عشق مبتلا شده بود چون گمان کرد که کاترین زیباترین و کاملترین دختران جهان میباشد از این رو خود را شوهری چنان دختری نمیدانست لیفین دو ماه در موسکو به سرورد و در خلال این مدت هر روز کاترین را میدید و هر بار که دختر را میدید شایسته و بزرگتر در نظرش مجسم شده و خیشتن را حقیر و پست میدید و از این رو نومید و دل شکسته به شهرستان ها رد بیچاره لیفین چون این تصور میکرد که دختر او را دوست نمیدارد و خانواده اش حاضر نیستند او را به وی بدهند ولی پس از آنکه مدتی در شهرستان ها ماند و دید که عشق کاترین روز به روز در نهادش زیادتر می شود، تصمیم گرفت که دو مرتبه به موسکو مراجعه کند. چون جواب ردی از دختر یا پدر و مادرش نشنیده بود. تصمیم گرفت به موسکو مراجعت کند و از کاترین خواستگاری کند. اما اگر کاترین قبول نکرد؟ دیگر جوان بیچاره نتوانست فکر کند که اگر دختر حاضر نشد با او ازدواج کند چه برسر او خواهد آمد؟ فصل هفتم. لیفین به میدان یخبازی با گام های لردان رفت در حالی که قلبش میتپید و نفس نفس میزد و باور نمیکرد که او کاترین را دیده و با او صحبت خواهد کرد وقتی لیفین نزدیک میدان یخبازی شد فریات های شاد باش و تماشاچیان را شنید؟ همچنان که خیره به یخبازان می نگریست، ناگاه کاترین را دید و از این ملاقات ناگهانی در جای خود خوش گشتد و نفسش بند آمد و قلبش از حرکت بازی استاد. لیفین مجذوب زیبایی و گیرایی کاترین که به سوی او آمد گردید و سر به زی در حیرت و نگرانی فرو رفته بود. صدایی را شنید که به او گوید، لیفین کی آمدی؟ این مرد قهرمان یخبازی است. بیا به میدان یخبازی یخ برزره خیلی زیبایی دارد. گوینده این کلمات ایوان شرباستی پسر اموی کاترین بود. لیفین خواست پاسخی به او بدهد ولی یک متبه متوجه شد که کاترین نزدیک می شود. لیفین ساکت ماند و دیگر نتوانست سخنی بگوید. کاترین با احتیاط و ترس پیش می آمد. زیرا او نمی توانست درست یخبازی کند و از این رو در حالی که به این طرف و آن طرف متمایل میشد، به پسرموی خود نزدیک شده دست خود را بر روی شانه او گذاشت و از افتادن خود جلوگیری کرد چون این به نظر لیفین رسید که هرگز کاترین را به این خوشگلی ندیده است الحق کاترین زیبا و دلربا بود گیسوی طلایی دلفریب سیده سفید و شهوتانگیز های برجسته و چشمان آبی گیرایی داشت در چشمان درشت و زیبای کاترین آثار مهر و وفا راستگویی و سراحت لهجه خوانده میشد بر لبانش تبسم شیرین و این نقش بسته بود چنان تبسمی که قلب لیفین بنای تپیدن را گذاشت کاترین در حالی که دست لیفین را میفشرد گفت آیا خیلی وقت است که به مسکو آمده اید؟ لیفین با لحنت زبان گفت: من نه، من دیروز آمدم. مقصودم این است که امروز آمدم. آنگاه در تعقیب سخنان خود گفت: آمدم که شما را ببینم. چون به یاد آورد که برای این آمده است که کاترین را ببیند، چهره اش سرخ شده با صورت گفت: من هرگز نمیدانستم که شما با این مهارت زبردستی بروی روی بازی کنید حتی خیره به او نگاه کرد و مثل این بود که میخواهد علت استراب وی را بداند آنگاه گفت من مستحق چنین تعریفی نیستم ولی جا دارد که از این تعریف ماهرترین یخبازان ببالم پس از آن قطعات کوچک یخی که به جامش چسبیده بود پاک کرد و به لیفی مهلت داد جواب بدهد آنگاه تبسمی نمود و گفت چقدر مایرم تو را ببینم بیا برویم با هم یخ بازی کنیم؟ لیفین نگاهی به دوخترف کنده، نمیخواست آنچه را که شنیده بود، باور کند. لیفین پالتوی خود را کنده، آماده ی بازی شد، ولی کم پیش خود میگفت، آیا اعتراف به عشق خود نسبت به او بنمایم یا نه؟ من اکنون خیلی خوش بختم، چه چی میشه و اگر او... و قلبش از چنین اندیشه که مبادا جواب رد بشنود فروریخت چند دقیقه بعد لیفین در کنار کاترین با خجلت یخبازی میکرد ولی چیزی نگذشت که تبسم شیرین و دلفریبی را بر لبان کاترین دید آنگاه کمی مطمئن و آرام شد لیفین دست کاترین را گرفت نخست آهسته و بعد با سرعت بنایی یخبازی را گذاشت در آن موقع لیفین حس کرد که کاترین دست او را می فشارد. حتما شما به من کمک می کنید که بازی را خیلی خوب فراگیرم. من در کنار شما احساس خوشی و اطمینان می نمایم. لیفین گفت من هم در کنار شما احساس خوشبختی و سعادت می نمایم. و یک مرتبه کلام خود را قطع کرد و چهره اش شد. سپس گفت از سخن من بدتان نیامد ما بادا نسبت به شما جسارتی کرده باشم نه چه جسارتی راستی زمستان در دهات به شما بد نمی گذارد؟ نه کارهای زیاد مرا بسیار سخت مشغول میدارد دختر گفت آیا خیال دارید زیاد در دهات بمانید؟ لیفین گفت نمیدانم چطور نمیدانید لیفین گفت آه نه ماندن من. بسته به نظر شماست؟ دوباره لیفین از جسارت خود نگران شده و با ترس وحشت نگاهی کرد ولی کاترین به حرف لیفین پی نبورده صحبت را تغییر داد و گفت آرستی خیال نداری مادرم را ببینی دختر پس از ادای این کلمات دست لیفین را گرفته به سوی مادر خود برد مادر کاترین در حالی که با سردی به لیفین دست می داد گفت آقای لیفین از دیدن شما خوشبختم. آنگاه رو به دختر خود کرد و گفت خطرین ما یه نیستی که برویم؟ چرا مادر آنگاه در صداد تهیه ی خود برآمد. مادر گفت آقای لیفین ما مثل سابق عصرهای پنجشنبه از آشنایان خود پذیرایی می کنیم لیفین گفت امروز هم پنجشنبه. مادر با کمی خشونت گفت آری؟ ما خوش وقت می می‌شویم اگر شما به خانه ما بیایید کاترین متوجه خشونت مادر خود شده برای اینکه لیفین بدش نیاید رو به او کرده با تبسم شیرینی گفت امیدوارم که به دیدن شما نایل گردین آنگاه دست در بازوی مادر افکند در این لحظه ابلووسکی با کبر و غرور و لبان متبسمی پیش آمد ولی همین که شاهزاده خانم شرباتسکی را دید تبسم از لبانش مهر گردید. شاهزاده خانم مادر کاترین میخواست از ابلونسکی درباره دختر خود دریا در سوال کند. ولی ابلونسکی در حالی که چون مجرمین سر به زیر بود او را مطمئن ساخته دست در بازوی لیفین افکند و او پرسید آیا میایی برویم؟ لیفین در حالی که هنوز صدای کاترین در گوشش تنین انداز بود گفت آره آره بیا برویم. مصل هشتاست ابلانسکی گیلاس مشروب خود را بر روی میز گذاشت و با بیحالی از لیفین پرسید آیا خیال داری امشب به قصر شرباتسکی بروی؟ آره ولی چنین ریست کردم که شاهزاد خانم با سردی از من دعوت کرد ابلانسکی گفت اهمیت ندارد، این عادت اوست ولی بگو ببینم علت فرار تو از موسکو چه بوده است خانواده شرباتسکی مکرر درباره‌ی تو از من ولی من نمی چه بگویم به راستی آدم عجیبی هستی لیفین گفت راست می من آدم عجیبی هستم دلیل آن هم این است که من به طور ناگهانی به موسکو مراجعت کردم و امروز آمدم تا ابلونسکی در حالی که خیره به او نگاه می کرد کلام او را قطع کرد و گفت لیفین حتما تو خوشبخت هستی لیفین گفت چطور مگه؟ ابلانسکی تبسم کرد و پاسخ داد من اسب خوب و اصیل رو از حرکات او و عاشق رو از نگاه هایش لیفین تو آینده خوبی خواهی داشت لیفین سرتاپا تا لرزید و فریاد برآورد پس معلوم می شود که تو می چرا امروز به موسکو آمدم ابلانسکی در حالی که تبصم شیطنات باری بر لبان داشت گفت آری. من همه چیز را میدانم. لیفین راست در جای خود نشست و با صدای لرزانی پرسید خب عقیده تو در این باره چیست؟ ابلونسکی گیلاس شراب خود را سر کشیده سپس به چشمان لیفین نگاه کرد و گفت من از طه دل پیروزی و موفقیت تو را خواهانم لیفین سرخ شده فریاد ها آیا به نظر تو این ازدواج عملی خواهد شد؟ بلانسکی گفت: چرا عملی نشود؟ به خصوص که همسرم داریا حاضر است که تو شوهر خواهرش بشوی و بیمیل نیست که در این باره به تو کمک کند چهره یلی باز شده نمود و گفت: راست میگویی همسرت فرشته است در حالی که از جای برمیخواست اضافه کرد؟ بس است بس تو با دادن این مجده بر خوشببختنی مردان روی زمین ساختی بلانسکی گفت لحظه سبر کن میخواهم چیز دیگری به تو بگویم آیا فرانسکی را می شناسی؟ لیفین گفت نه او را نمی برای چه؟ او گفت او یکی از رقیبان و صد راه تو در این ازدواج خواهد بود به شنیدن این کلام رنگ از چهره لیفین پرید و با صدایی که حاکی از ترس و نگرانی بود گفت فرانسکی است. او پسر کونت ایوان فرانسکی می باشد. او نمونه کاملی از جوانان پترزبورگ می باشد. من هنگامی که در تیزفیر خدمت سربازی را انجام می دادم او را شناختم. او جوانی رشید و شیک است. ثروت زیادی دارد و با اغنب اشخاص متنفس هم آشنا می باشد. به علاوه مردی فهمیده و باهوش و و نکدفت نفسد. آینده خوبی نیز نیزدار پیش دارد. لیفین ابرو در هم کشید و ساکت ماند. اوگلوزکی باز گفت او پس از مسافرت تو به موسکو آمد. و چنان فهمیدن که سخت عاشق کاترین شده است. چنان که میدانی مادر کاترین لیفین لبخای خود را گزیده سخنان اوگلوزکی را قطع کرد و گفت ببخشید من چیزی نمیدارم. اوگلوزکی در حالی که میخندید گفت آسوده باش. تو از حریف خود شایسته تر می باشی و شانس بیشتری داری. لیفین سر به زیر و چیزی نگفت. ابلانسی گفت عقیده من این است که چه زودتر از او خواستگاری کنی. آنگاه گیلاس لیفین را پر کرد. لیفین فریاد براورد. نه! نه من نمی در حالت مستی به نزد کاترین بروم. آنگاه در تعقیب خود گفت راستی تو چندین مرتبه به من وعده دادی که به دیدنم بیایی تا با هم به شکار برویم پس چرا در فصل بهار به نزد ما نمیایی مقصود لیفین از گفتن این جمله این بود که موضوع صحبت را تغییر داده باشد چه او در حقیقت پشیمان شد که چرا مکنونات قلبی خود را به او به ابلونسکی گفته است و بالاخره بر گران آمد که حریف و رقیبی داشته باشد ابلانسکی پی به افکار و احساسات دوست خود برده تبسمی کرد و گفت مطفید باش آخرش روزی به سراغ تو خواهم آمد. آنگاه سیگاری آتش زده در تعقیب سخنان خود گفت دوست عزیز، زن است که همه ی ما مردان آن میچرخیم اما نسبت به من سبب بدبختی و بیچارگی هم شده است. لیفین نگاهی بر او کرد و پیش خود اندیشید که خواهی ممکن است چون این خوشحالی بدبخت باشد. ابلانفگی گفت لیفین من احتیاج به نصیحت تو دارم. گیرم تو ازدواج کردی و همسر خود را دوست میداری. با این حال عاشق زن دیگری شدی. لیفین کلام او را قطع کرد و گفت چه میگویی؟ من مقصودت را نمیفهمم. ابلانفگی گفت گوش بده چه میگویم؟ آن با به من بگو که چه باید بکنم. همسرم زیبایی و دلربایی خود را از دست داده است. در حالی که من هنوز زیبایی و نشاط جوانی را از دست بدادم. آری من همانند همه مردان پس از چند سال معاشرت با زوجه خود حس کردم که عشقم نسبت به او کاهش یافته است. درست گوش بده. فرض کن که در اینجا دو زن وجود دارد. یکی حق طبیعی خود را که عشق باشد از تو مطالبه می کند ولی تو نمیتوانی او را دوست بداری دیگری جان خود را فدای تو میکند و چیزی از تو نمیخواهد تو در چنین حالی چه خواهی کرد و کدام یک از این دو زن را انتخاب خواهی نمود بدبختی من در این همین جاست لیفین گفت اگر عقیده مرا خواهی من به تو میگویم که ابدا چنین بدبختی که تو تصور میکنی وجود ندارد زیرا چون چه میدانی عشق بر دو نوع است یکی عشق پاک افلاطونی و دیگر عشق غریزی یا مجازی بسیاری از مردان از عشق فقط نوع دوم را میشناسند و این اشخاص حق ندارند درباره بدبختی شکایت کنند زیرا آنان جز این جمله را به زن میگویند از اینکه مرا از خود متمتع و برخوردار ساختی خیلی متشکرم خدا نگهدار با این عشق مجازی همه چیز پایان میابد، اما عشق حقیقی یا افلاتونی بدبختی به بار نمیآورد زیرا همه چیز در آن پاک و روشن است. ابلازگی آهی کشید و ندانست چه بگوید. لحظه ای به سکوت گذشت و هر دو چنین حس کردند که از حیث اخلاق و طرز فکر با هم فرق زیادی دارند. کاترین شرباتسکی به هیجده سالگی رسید جوانان موسکو شیفته او شده پیرامون وی را گرفتند دو نفر بیش از همه شانس ازدواج با کاترین را داشتند این دو جوان یکی لیفین و دیگری کنت فرونسکی بود لیفین به خانه کاترین زیاد میرفت و از حرکات و رفتارش کاملا آشکار بود که سخت عاشق کاترین است و میل دارد با او ازدواج کند پدر کاترین لیفین را جوانی آراسته و همسری شایسته برای دختر خود میدید ولی مادر کاترین که مایل بود شوهری بهتر از لیفین برای دختر خود پیدا کند عذرهایی از قبیل اینکه کاترین هنوز به سن ازدواج نرسیده و معلوم نیست لیفین را دوست میدارد یا نه عذر میآورد و در ضمن متذکر میشد که لیفین هنوز تصمیم قطعی ندارد و وقتی لیفین به طور ناگهانی موسکرا ترک گفت شاهزاده خانم به شوهر خیش همین نکته اخیر را خاطر نشان نمود و در این موقع بود که سرکله فرانسکی ظاهر شد و شاهزاده خانم خیلی خوشحال گردید زیرا دید که شوهر خوبی برای دخترش کاترین پیدا شده. شاهزاده خانم فرونسکی را از هر حیث بر لیفین ترجیح و برتری میداد زیرا لیفین را آدم مرموز و عجیبی میدید که فقط علاقه به گاوها و خوکهای خود دارد و هر زنی همسر او بشود حتما در زندگانی با وی نخواهد شد بآنگهی جوانی شش هفته به خانه آنها رفت آمد کند و هنوز نتوانسته تصمیم قطعی خود را بگیرد و مثل این است که میل دارد دختر را دو دستی تقدیم وی کنند جوانی که به خانه دختری برای تقاضای ازدواج رفته آمد نمود باید با سراحت لحجه مقصود خود را در میان نهد نه آنکه بدون خبر آن خانه را ترک گوید و از شهر فرار کند اما برعکس فروسکی در نظر مادر کاترین مرد کاملی بود که از هر حیف شایستگی همسری با دختر او را داشت چه او مرد ثروتمند خانواده بود و از افسران گارد شاهی به شمال می رفت و دارای آینده درخشانی بود از این مزایا گذشته شیک و زیبا و خوش صحبت بود و زن هم بیش از این از شوهر خود چه می خواهد ضمن مادر کاترین متوجه شده بود که فرانسکی عشق و شیفتگی خود را به کاترین کاملا روشن و آشکار ساخته است. سرونسکی با کاترین مرتبا به گردش و ها رفته و به غیر از او با هیچ دختری نمی رفتید. از نتیجه صحبت یک شب مادر کاترین یقین حاصل کرد که سرونسکی در قصد خود جدی است. زیرا وی در آن شب گفته بود که او و برادرش سعی دارند در هر کاری با اجازه مادر خود اقدام نماید، و اکنون در انتظار مراجعت مادر خیش از پترزبورد می باشند. با این ترتیب مادر کاترین تصمیم گرفت که دختر خود را به فرونسکی بدهد. و همین که مادر دید که لیفین به مسکو مراجعت کرد نگران شد که مبادا فرونسکی مشکلاتی برای آنها تدید آورد. مادر کاترین در مراجعت به خانه از دختر خود پرسید آیا لیفین خیلی وقت است که به مسکو مراجعت کرده است؟ کاترین پاسخ داد، نه مادر جان او امروز آمده است. کاترین، من میخواهم به تو چیزی بگویم. دختر در حالی که گناه هایش شده بود گفت، مادر، خواهش میکنم چیزی نگویید، زیرا من مقصود شما را فهمیدم. مادر گفت، میخواهم بگویم که تو چون یکی از این دو جوان را برگزیده ای نباید. دختر گفت، بس است مادر، من قصد شما را دانستم. فصل دهم کاترین در فاصله بین شام و شروع شبنشینی در اندیشه فرو رفت و چون سربازی که میخواهد داخل جنگ شود دستخوش نگرانی گردید او متوجه شد که آن دو جوان برای نخستین بار در خانه آنها با هم روبرو میشوند و سرنوشت او مربوط به مواجهه آن دو حریف میباشد کاترین لیفین و فرانسکی را در نظر آورده دید که از فرونسکی چندان خوشش خوششته میآید، ولی زندگانی لیفین هم مرموز و قابل تعریف نیست، در صورتی که ممکن است زندگانی با فرونسکی امیدبخش و قرین آسایش بوده باشد. کاترین هنگامی که جامعه شبنشنی را برتر میکرد با نگاه کردن در آینه دریافت که از هر هیز آراسته و زیبا می باشد. او به سوی سالن پذیرایی رفت و هم که داخل تالار پذیرایی شد، رئیس پیشخدمت آمدن لیفین را اعلام نمود در اینجا قلب کاترین از جای فرو ریخت به آینه ای که بر دیوار سالن نصب شده بود نگریست و از پریدگی رنگ چهره خود وحشت کرد کاترین به بهطور یقین میدانست که لیفین برای این زودتر از همه میهمانان آمده است تا با او خلوت کرده و پیشنهاد ازدواج با وی را بنماید